فصل دوم من آدم پخمی نیستم خیلی هم بدم میاد کسی در موردم اینطوری فکر کند اما زندگی در کنار خواهری که از من کوچکتر بود اما از نظر درسی نه فقط به من رسید بلکه یک سال هم جلو افتاد سخت بود و نمیشد فکر نکنم که کم هوش نیستم همیشه کارهای عاقلانه و هوشمندانه را اول کاترینا انجام میداد با اینکه ماه از من کوچکتر بود هر کتابی که میخوااندم او قبل از من خوانده بود سر میز غذا از هر موضوعی حرف می زدم او خودش میدانست تنها کسی بود که میدانم از امتحان خوشش میآید گرچه گاهی فکر می کنم فقط در لباس پوشیدن با او فرق دارم زیر تنها کاری که ترینا بلد نیست انجام بدهد لباس پوشیدن است از آن دست دخترهایی دخترهاییست که همیشه پلیور و شلوار جین می پوشند. همیشه هم اول شلوار جین را اتوم پدرم به من میگوید نوبرش را آوردی. چون معمولا هرچه همان اول به ذهنم می رسد به زبان میآورم. مادرم هم اسمم را گذاشته شاهکار. این هم روش اوست تا معدبانه به طرز لباس پوشیدنم را نمیپسندد اما به غیر از دوره کتایی در نوجوانی هیچ وقت دوست نداشتم شبیه ترینا باشم یا شبیه دخترهای مدرسه. تا چهارده سالگی لباس پسرانه را ترجیح می دادم. حالا هم هر جوری که دلم خواست لباس می پوشم. فقط بستگی به روحیه ی آن روزم دارد. اصلا برایم مهم نیست که امول به نظر بیایم. جسه کچک و موهای سیاه دارم و به گفته پدرم صورتم شبیه پری هاست. البته نه از نظر زیبایی. زشت نیستم ولی فکر نمی کنم کسی مرا زیبا بداند. چیز زیبایی ندارم. پاتریک هر وقت میخواست به من نزدیک شود میگفت که زیبا هستم. کولا اینجوری آدم وقت شناسی بود. حدود هفت سال میشد که همدیگر را میشناختیم. 26 سالم بود ولی خودم باورم نمیشد. تا روزی که کارم را از دست دادم اصلا به سنم فکر نکرده بودم. حدث می زدم که احیانا با پاتریک ازدواج میکنم. چند تا بچه به دنیا میآورم و به فاصله چند خیابان از جایی که همیشه زندگی کردم ساکن میشوم. به غیر سلقه عجیب و غریبی که در لباس پوشیدن داشتم و قد کوتاه هم تفاوت زیادی با افرادی که در خیابان از کنارشان رد می شوید نداشتم احتمالا هیچ وقت بر نمی گشتید که دوباره نگاه هم کنید دختری معمولی با زندگی معمولی شرایط زندگیم با روحیم کاملا جور بود اصرار میگفت برای مصاحبه باید و دامن بپوشی این روزا همه بدجور لباس اسپورت میپوشن چون وقتی میخوام با قاشق و دهن پیر مرد و پیرزن زن بذارم باید و دامن تنم باشه مزخرف نگو پول ندارم و دامن بخرم تازه اگه بخرم و کارو به دست نیارم چی؟ پس مال منو بپوش بلوز خوشگلیم برای توتو میکنم فقط یه بارم شده ما تو این مدلی درست نکن به موهایم کرد که معمولاً از وسط فرق گرفتم و دو قسمت میکردم بعد هر قسمت رو میپیچاندم و در دو طرف سرم جمع میکردم. مثل مدل موی پنسس لیا فقط تلاش کن مثل بقیه آدما باشی؟ میدانستم نباید با مادرم جر و بحث کنم مطمئنم مادرم به پدرم گفته بود وقتی دارم از خانه میروم بیرون هیچ اظهار نظری در مورد لباسم نکند. با کت و دامن مادرم که زیادی برایم تنگ بود نمی درست راه بروم بابا گفت خداحافظ عزیزم گوشه دهانش کشیده شد موفق باشی شدی عین آدموی حرفی مسئله این نبود که لباس مادرم را پوشیده بودم یا مدلش به اواخر دهه 1980 برمیگشت بلکه چون واقعا برایم کوچک بود حس کردم کمرم دارد وارد شکمم میشود کده چهار دکمه هم به تنم کشیده میشد سوار اتوبوس شدم تا این مسافت کوتاه را طی کنم دلشوره داشتم به عمرم به مصاحبه کاری درست حسابی نرفته بودم کار توی کافه را هم وقتی شروع کردم که ترینه شرط بسته بود نمیتوانم یک روز کاری برای خودم پیدا کنم من هم بعد از این حرف خواهرم وارد کافه شده و خیلی ساده از فرانک پرسیده بودم به کمک نیاز دارد یا نه روز اولی بود که کافه را باز کرده بود. اصلا نمیدانست به چه زبانی تشکر کند. حالا که به گذشته نگاه میکردم به خاطر نمیآوردم درباره پول با او حرف زده باشم. پیشنهاد مزد هفتگی داد من هم قبول کردم. سالی یک بار افزایش حقوق داشتم که معمولا هم کمی بیشتر از مقدار مورد درخواست من بود. بگذریم معمولا در مصاحبه چه پرسشهایی مطرح می‌کنند. ساید گفته بود پرستار اصلیش مردی است که نیازهای شخصیش را برطرف می وقتی این حرف را شنیدم بدنم مور مور شد. ساید گفته بود که هنوز دقیقا نمیدانیم وظیفه پرستار کمکی چیست؟ خودم را مجسم می کردم که دارم آب دهان پیرمردی را از گوشه ای لبش پاک می کنم و احتمالا می پرسم چا ایمیل دارید؟ پدر بزرگ بعد از سکتهی که کرد و حتی وقتی هم به تدریج رو به بهبودی رفت قادر نبود کارهای خودش را انجام بدهد مادرم انجام می بابا می گفت مادرت فرشته است و به نظر من دلیلش این بود که مادرم او را تمیز می کرد بدون اینکه صورتش را برگرداند و جیغ زنان از خانه بیرون برود. البته کسی مستقیم به چنین چیزی اشاره نکرده و این حرف را به من نزده بود. من غذای پدر بزرگ را برایش توی بشقاب تیکه میکردم. چای هم درست میکردم ولی طبق معمول مطمئن نبودم چه چیزهای قاطیش گردم. هاوس در طرف دیگر قلع قرار داشت. نزدیک دیوارهای قرون بستایی. و درست وسط منطقه گردشگری در دناحی‌ای که سنگفرش نبود و فقط چهار خانه و مغازه نشنال تراست در آن واقه بود. در طول عمرم میلیون‌ها بار از مقابل این خانه رد شده بودم ولی انگار اصلا ندیده بودمش. از پارکینگ قلعه و ایستگاه راه آهن گذشتم. هر دو خلوت و بیرونق بودند. درست به همان اندازه که یک جاذبه گردشگری تابستانی در ماه فوریه میتواند تواند پرطرفدار باشد. حالا می دیدم خانه بزرگتر از تصورم است، با آجرهای قرمز و در ورودی دولنگه ای. این سبک خانه را آدم در نسخه های قدیمی کانتری لایف روی میز اتاق انتظار دکترها میبیند. در مسیر طولانی ماشین رو قدم برداشتم. سعی کردم به این فکر نکنم که کسی از پشت پنجره نگاهم می کند. راه رفتن در مسیر طولانی ماشین رو آدم را در وضعیت نامطلوبی قرار میدهد. خود به خود احساس حقارت می داشتم به خودم فکر می چطوری سلام و حفل پرسی کنم که در باز شد و من به خود آمدم زنی که خیلی هم بزرگتر از من نبود بیرون آمد و پا به هشتی گذاشت شلوار سفید و روپوش پزشکی پوشیده بود پالتو و پوش زیر بغل داشت وقتی از کنارم رد شد لبخند معتبانه زد از داخل خانه صدایی به گوش رسید که می متشکرم که آمدید. با شما در تماس هستیم. چهرهی زنی نمایان شد. میان میانسال ولی زیبا بود. موهایش به طرز بسیار زیبایی کوتاه شده بود. کت و شلوار زنانه تنش بود که بیشک بیش از درآمد ماهیانهای پدرم می‌ارزید. حتما دو شیزه کلارک هستید. دستم را جلو بردم و گفتم: لیزا کاری که مادرم گفته بود حتما انجام بدم. پدر و مادرم می جوانهای این دور و زمانه هیچ وقت با کسی دست نمی دهند. قدیم اصلا فکرش را هم نمی که فقط یک سلام بگویند. یا بدتر از آن، یک بوس هوایی. ظاهرا نباید با این زن رو بوسی هوایی می کردم. زن دستش را آرام از دستم بیرون کشید و گفت بله، درسته، بفرمایید تو؟ اما نگاهش همین طور به من بود. انگار داشت ارزیابی هم می کرد. داخل؟ خسته به نظر می رسید. حتماً آن روز این جمله را بارها تکرار کرده بود. دنبالش راه افتادم و وارد اتاق بزرگی شدم که پنجره های فرانسویش از کف تا سقف بودند. پرده های سنگینی به طرز بسیار با سلقه ای از میل پرده های قهفهی آویزان بودند. زمین هم با قالیچه های ایرانی فرش شده بود. فضای اتاق بوی واکس و مبلمان آنتیک میداد. میزهای کوچک و شیک در هر گوشه و کناری دیده می شدند. روی سطح سیغلیشان هم جعبه های قرار داشت. طوری که تمام سطح را پوشانده بود. دوست داشتم بدنم خانواده ترینر فنجان قهوهشان را کجا می از طرف اداره کار می درسته؟ دنشنید. زن سرگرم بررسی اوراق پوشه شد من هم دوزکی نگاهی به اطراف انداختم با خودم فکر کرده بودم که باید شبیه خانه سالمندان باشد با بالابر و سطوح گردگیری شده اما خانه ترینر به یکی از آن هتل های بسیار گران قیمت می ماند قرق در مال و منال قدیمی با وسایلی کم نظیر و لوکس که حقیقتا با ارزش به نظر می رسیدند چندین قاب عکس نقره‌ای روی بوفه بود اما از من دور بودند و نمی توانستم را تشخیص بدهم. زن همچنان با ورق سرگرم بود. من هم روی مبل جابجا جا شدم تا دید بهتری پیدا کنم. بعد صدا را شنیدم. کاملا پیدا بود که چیزی پاره شده است. سرم را پایین گرفتم و دیدم دو تکه پارچه‌ای که کنار پایی راستم به هم بصل بودند جر خوردم. تکه های فرسوده ی به طرز بدی در هوا پخش شدند. حس کردم صورتم سرخ شده است. خب دوشیزه کلارک، تجربه در زمینه کار با افرادی که دست و پاشون فلجه دارید؟ صورتم را به طرف خانم ترینر برگرداندم. وول میخوردم تا بتوانم با کتم حد امکان پارگی دامن را بپوشانم. ام... نه. صابقی در پرستاری داری؟ نه هیچ وقت کار نکردم بعد انگار که صدای ساید را در گوشم میشنیدم اضافه کردم اما مطمئنم یاد می گیرم اصلا میدونه کسی که از چهار دست و پا فلجه یعنی چی؟ با خورسندی گفتم <تصفح> یعنی کسی که سوار صندلی چرخدار میشه آه میشه گفت اما درجه هاش فرق میکنه. ما الان داریم در مورد کسی حرف می‌زنیم که هر دو پاش اصلا حرکت ندارند. و دستش هم خیلی کم. ناراحت نمیشید. گفتم. قطعا نبه که خودش نراحت میشه. لبخندی زدم. اما چهره ی زن بی حالت و بی احساس بود. اضافه کردم. ببخشید. منظورم این نبود. دوش از کلارک رانندگی می‌کنید؟ بله، گواهی نامه دارید؟ با تکان سر تصدیق کردم. کامیلا ترینر علامتی در فهرستش زد بارگی دامن هر لحظه بیشتر میشد. حتی تا جلوتر میرفت و برانم می رسید باید از جایم بلند می شدم، وقتی ایستادم شبیه به یکی از آن دخترهای نمایش کمدی شده بودم خانم ترینر با تعجب به من سل زد. دو کلارک، چیزی شده؟ فقط کمی گرمم شده اشکالی نداره کت همو در رم. پیش از آن که فرصت جواب دادن پیدا کند کت را سریع در آوردم و دور کمرم بستم و پارگی را پوشاندم. لبخندی زدم و گفتم خیلی گرمه آدم وقتی از بیرون میاد گرمش میشه خانم ترینر لحظه ای مکس کرد بعد دوباره به ورقایش نگاه کرد چند سال دارید؟ 26 و شش سال هم در جای قبلی کار کردید؟ بله نسخی معرفی نامه رو دارید خانم ترینر معرفی نامه رو بالا گرفت و با چشمان نیمه بسته نگاه کرد کارفرمای قبلی گفته که شما فردی سمیمی و اهل حرف هستید و انرژیتون مثبته بله درسته دوباره چهش خشک و جدی شد. با خودم گفتم لعنتی انگار دوباره داشت وارسیم میکرد اما نه به شکل خوبی دباس مادرم یک باره به نظرم حقیر و ارزان قیمت آمد نخایش زیر نور ضعیف آنجا می درخشیدند باید شلوار معمولی خودم را با بولوز می در واقع هر چیزی غیر از این کتت آمد پس چرا کارتوول کردی؟ اونجا که همه چیز خوب بود؟ فرانک... صاحب کافه اونجا رو فروخت کافه پایین قلعه بود با من خودم که هم همونجا بمونم خانم ترینر سری تکان داد شاید لزومی نمیدید چیزهای بیشتری بپرسد شاید او هم بیشتر دوست داشت من همونجا میماندم چه برنامه ای برای زندگی داری؟ ببخشید متوجه نشدم قصد خاصی برای آینده داری، شغلی، کاری، اینجا برای تو حکم سکوی پرتابو داره؟ هدف و آرزوی خاصی داری که باید دنبال کنی؟ به وزول زدم، هیچ حس خاصی نداشتم چه منظوری داشت؟ آیا از نوع سؤال انحرافی بود؟ نه، هنوز به اونجا فکر نکردم، از وقتی کارمو از دست دادم فقط. آب دهانم را قورد دادم فقط میخواستم دوباره برگردم سر کار. جواب بیمزهی داده بودم. از قیافه خانم ترینر پیدا بود او هم دارد با خودش فکر میکند این دیگر چجور است که برای مصاحبه آمده ولی خودش هم نمیداند دنبال چیست. خودکارش را پایین گذاشت. خب دوشسه کلارک، حالا شما به من بگو. وقتی دافتالا قبلی هفت سال سابقه کار با افراد فلج رو داره، چرا باید شما رو استخدام کنم؟ ناگهان چهره مادرم جلوی چشمانم ظاهر شد. تصورش را هم نمیتوانستم بکنم که با لباس پاره و شکست در یک مساحبه دیگر به خانه برگردم. دستمزد این کار بیش از ساعتی نه پوند بود. خودم را کمی صاف کردم خب، من خیلی زود یاد میگیرم. هیچ وقتم مریض نمیشم. خونم اون طرف قلع است. خیلی هم قوی تر از اینی هستم که به نظر می رسم. احتمالا اونقدر قوی هستم که بتونم شوهرتون رو کنم. شوهرم؟ شوهرم نیست که شما باید ازش پرستاری کنید. پسرمه. پلگ زدم. پسرتون؟ من از کار سخت نمی ترسم، خیلی هم خوب بردم با هر جور آدمی تا کنم. با هر شریعتی کنار میام. اوزارو بابه میلم میکنم. از ورژی دست کشیدم و ساکت شدم. فکر اینکه که به سرش است متعجبم کرده بود. دوباره به حرف آمدم. من فکر میکنم کار نشد نداره. گرچه پدرم قبول نداره. خانم ترینر با حالت عجیبی به من زده بود. تازه متوجه حرفم شدم. بریده بریده گفتم. ببخشید. منظورم این نیست که وضعیت فلج بودن چهار دستوپای پسرتون رو میتونم تغییر بدم. دوشوز کلارک باید به شما بگم قرارداد دائمی نیست. مدتش حد اکثر شش ماهه. برای همین دستمزده خوبی میدیم. فقط میخوایم آدم مناسبی پیدا کنیم. وقتی آدم به طور چرخشی تو کارخونه کنسرفسازی جوجه کار کرده باشه کار تو خلیج گوانتاناما برای شیشما میتونه جالب باشه باور کنید اوه لو خفهشو. لبم را به دندان گرفتم. اما به نظر میرسید خانم ترینر متوجه نیست پوشه را بست پسران ویل حدود دو سال پیش تو خیابون تصادف بدی کرد به مراقبت شبانه روزی نیاز داره بیشتر کاراشو پرستاره حرفه ایش انجام میده. من اخیرا دوباره برگشتم سر کار. به کسی نیاز داریم که در طول روز اینجا باشه. کنارش بمونه و کمک کنه غذا و نوشیدنی بخوره. مواظب باشه که مشکلی براش پیش نیاد. در اصل نیروی کمکی میخواییم. کامیل ترینر سرش را پایین انداخت و به پایش خیره شد. کسی باید کنار ویل باشه که به اهمیت مسئولیتش واقف باشه. و این از هر چیز دیگهای مهمتره. هر حرفی میزد حتی تاکیدش بر کلمات به شکلی به حماقت من اشاره می کرد کیفم را برداشتم گفتم؟ بله درست. هنوز هم به این کار علاقه حرفش به قدری برایم غیر منتظره بود که اولش فکر کردم اشتباه شنیدم. ببخشید؟ متوجه نشدم باید هر زودت ها کارتون رو شروع کنید حقوقتون هفتگی پرداخت میشه نمیدانستم چه بگویم کلمه کم و بودم ترجیم میدید من به جایی ساعت کار از هشت صبح تا پنج ازر گاهی هم بیشتر وقت زیادی برای نهار ندارید گرچه نیتن پرستارش موقع نهار میاد و در نتیجه شما نیم ساعتی وقت آزاد دارید به چیزهای دیگه نیاز نیست؟ منظورم از ازادر پزشکی همه گونه امکانات پزشکی رو برای ویل فراهم کردیم فقط به یه آدم قبراق و سر حال احتیاج داریم موضوع پیچیده است ویل باید قوت قلب پیدا کنه و دلگرم شه تا حرفش را ادامه نداد نگاهش به چیزی در اون طرف پنجرهی فرانسوی دوخته شد بالاخره به طرف من برگشت باید بگم که سلامت روحی ویل به اندازه سلامت جسمیش برامون مهمه. متوجه هستید؟ بله متوجهم. باید یونیفرم بپوشم؟ نه یونیفرم نه. نگاهی به پاهای من داخت. گرچه بهتر لباسی بپوشید که کمتر بدن نما باشه. سرم را پایین گرفتم و دیدم کتم جا به جا شده و پایم پیداست. وای ببخشید جر خورده لباسم اینطوری نیست ولی ظاهرا خانم ترینر گوش نمیداد. وقتی کارتو شروع کردی توضیحات بیشتری میدم دوشیزه کلارک ویل آدم راحتی نیست به غیر از مهارتهای تخصصی که الزامیه به مسائل روحی هم باید توجه کنید فردا شما رو میبینم فردا؟ احتیاجی نیست ببینمش امروز ویل حال و هوای خوبی نداره بهتره بعدا کارو شروع کنیم بلند شدم پیدا بود خانم ترینر منتظر است همینطور که داشتم کت مادرم را میپوشیدم گفتم بله ما چگرم پردا صبح ساعت هشت میبینم اتون مادرم داشت سیب زمینی توی بشقا به بابا می گذشت. دو تیکه گذاشت. بابا خودش دست به کار شد و تیکه سوم و چهارم را از توی دیس برداشت. مامی مانع شد و سیبزمینی ها را به دیس برگردند. بعد وقتی بابا دوباره اقدام کرد مامی با قاشق به دستش زد. دور میز کوچکمان، پدر و مادرم، خواهرم، و توماس و پدر بزرگ پاتریک که معمولاً چهار با ما شام میخورد نشسته بودند. مادرم به پدر بزرگ گفت پدر میخوای گوشت و برات تیکه کنیم؟ ترینا میکنی؟ ترینا به جلو خم شد و با مهارت تمام گوشت توی بوشقا به پدر بزرگ را تیکه کرد. برای توماس که طرف دیگرش بود هم همین کار را کرد. لو حوضای مرد چقدر وخیمه؟ بابا گفت اگه بذارن دخترم کار خودش خودشو بکنه و دیگه اونقدر وخیم نمیشه. تلویزیون پشت سر من روشن بود و بابا و پاتریک فوتبال تماشا میکردند. هر از گاهی که به تلویزیون چشم دوختند، یادشان میرفت لقمه را قورت بدهند و به پاس یا خطای احتمالی نگاه میکردند. به نظرم فرصت خیلی خوبیه. کار تو یکی از اون امارتهای بزرگ برای خانوادهی سطح بالا. ازا؟ خیلی آدم حسابی در خیابان ما به کسانی می گفتند آدم حسابی که هیچ عضفی از خانوادهشان خلاف موازین اجتماعی رفتار نمی کرد. آره فکر کنم. بابا با لبخند گفت <تصفيق> پس تو هم آداب معاشرت و حسابی یاد می گیری. آب میوهی که دست توماس بود داشت میریخ زمین. ترینه خم شد تا آن را بگیرد. گفت پسان خودشو دیدی خود مرد فلج چطوری بود؟ فردا میبینمش چه عجیب همه ی روز تو باهاش میگذرونی 9 ساعت بیشتر از پاتریک میبینیش گفتم سخت نیست پاتریک آن طرف میز بود خودش را بنشنیدن زد بابا گفت نگران نیستی از کنه مادرم تندو گفت برنارد فقط حرفی به زبون آوردم که همه دارم بهش فکر میکنن. پاتریک احتمالا بهترین کار که میتونی برای دوستت پیدا کنی <k Bolt> نه؟ پاتریک آن طرف میز لبخند زد. سرش به خوردن گرم بود ولی سیب سیبزمینی نمیخورد با وجودی که خوشمزه ترین بخش غذای مامی بود پاتریک این ماه نباید کربوهیدرات میخورد داشت خودش را برای مسابقه دو استقامت ماه مارس آماده کرد. داشتم با خودم فکر میکردم. لابد باید زبان اشارم یاد بگیری. اگر نتونه حرف بزنه از کجا میخواه بفهمی چی میخواد؟ مامی، مادرش نگفت که نمیتونه حرف بزنه. اینقدر شکه شده بودم که کار به دست بردم. حرف خانم ترینر به خاطرم نمود. شاید با یکی از اون عبزارای ارتباط بغرار کنه. مثل دانشمندا. مثل خانواده سیمپسون <تصفيق> توماس گفت تخم استگ. بابا گفت پاتری گفت استیون هافکینگ مامی نگاه شما تدامیز به توماس و بابا کرد و گفت این تویی که داری به حرفای بد یاد میدی تیزی نگاه مادرم حتی میتوانست استیک ببرد. اینطور نیست نمیدونم از کجا یاد میگیره. توماس صاف توی چشم پدرم نگاه کرد و گفت: تخم سگ. ترینی اخم کرد. اگه من بودم که دیوونه میشدم وقتی می دیدم با حنجره مصنوعی حرف میزنه. فکرشو بکن. بعد با ادا گفت: یه لیوان، آب بده. ترینا <تصفيق> <تصفيق> آدم سرزنده و سرخوشی بود. و هیچ وقت خودش را برای چیزی عذیت نمی کرد. بابا گاهی از این بابت شاکی بود. اولین عضو خانواده ایمان بود که رفت دانشگاه. بعد که توماس دنیا آمد، مجبور شد سال آخر دانشگاه را ول کند. پدر و مادرم هنوز امید داشتن ترینا روزی خانواده را به سعادت برساند. من گفتم چه فکر میکنین کسی که روی صندلی چرخدار میشینه باید مثل آدم آهنی حرف بزنه؟ اما تو باید خیلی بهش نزدیک شی و کاره شخصیشو بکنی. حداقل اینکه مجبور میشی با دستمال لحنش رو تمیز کنی و بهش آب و غذا بدی. فیل که نمیخوام آبا کنم. اون هم کی؟ تو که همش پوشک توماس رو پشت رو میبستی. فقط یه بار. دو بار از سه باری که پوشکش رو عوض کردی. مشغول خوردن لبیه سبز تلاش میکردم خودم را خوشبینتر از احساس واقعیم نشان بدهم اما حتی همان موقع هم که سوار اتوبوس بودم و به خانه برمیگشتم این افکار ذهنم را مشغول کرده بودند درباره چه چی چیزهایی حرف میزدیم اگر تمام روز با سر آویزان به منظور بزند چطور تحملش را داشتم اگر منظورش را نمیفهمیدم چه میشد همه میگفتند آدمی نیستم که بتوانم از چیز خوب مراقبت کنم بعد از مصیبت همستر و ماهی قرمز دیگر هرگز توی خانهمان حیوان هیوان دست آموز و گیاه نگه نداشتیم. سرکلی مادر خوشگو و جدیش هر چند وقتی بار پیدا می شود. فکرش رو هم نمی بکنم که تمام مدت زیر نگاه کسی باشم. ظاهرا خانوم ترینر از آن دستانانی بود که آدم های زبر و زرنگ هم زیر نگاهش دست و پاچ و لفتی پاتریک، تو چی فکر می کنی؟ پاتریک آب مفصلی نوشید و شانه بالا انداخت. بیرون باران به چارچوب پنجره می کوبید. فقط صدای تق و توق بشقاب و قاشق و چنگال به گوش میرسید. برنارد پولش خوبه. هرچی باشه بهتر از کار نوبت شب توی کارخونه کنسرو جوجه است. تیید از همه طرف میز بلند شد. من گفتم خب زایرم بهترین حرفی که در مورد کار جدیدم میگید اینه که بهتر از حمله و سخونهای جوجه به محل بارگیریه خب دارین اسم تو میتونی روی تناسب اندام کار کنی و بری پیش پاتریک و آموزش خصوصی بدی تناساب اندام ممنون بابا خواستم دوباره زمینی بردارم ولی پشیمان شدم مامی گفت خب چرا که نه حالت مادرم طوری بود که انگار میخواست بنشیند لحظه‌ای همه ساکت شدند. ولی نه. مادرم دوباره ایستاد و به پدربزرگ کمک کرد به گوشتش سس بزند. آدم باید به فکر آینده باشه. تو که خوب بلدی حرف بزنی؟ بابا خورخور کنان گفت. چربی اضافیام خوب بلدی بیاره. گفتم. برای خودم کار پیدا کردم. رسموزشم بیشتر از کار قبلیمه. البته اگه شما کاری به کارم نداشته باشین پاتریک وسط برید ولی موقتی بابا درست میگه وقتی شروع به کار کردی روی تناسب به اندامم کار کن میتونی مربی خصوصی خوبی بشی فقط اگه کمی تلاش کنی زیر لب فوشی به پاتریک دادم که نیشش تا پناگوش باز بود ترینا گفت لو دنبال کاری میگرده که فقط روی صندلی بشین و پاهاشو بالا بگیره همینطورم که داره با نیب به آیرون ساید پیر غذا میده تمام روز تلویزیون تماشا کنه؟ بله چون گل کوکر پژمردر رو دوباره توی سطح آب گذاشتن به تلاش جسمی و ذهنی احتیاج داره درسته ترینا بابا لیوان سفالی دسته داره چای را بلند کرد اصلسه هم داریم با شوخی میکنیم خیلی عالی شد که کار پیدا کردیم مایه سر بلندی اصلا هم نگران نیستم که فقط برای شیش ماه شرط میبندم همین که پاتو به اون خونه بذاری اون تخم سگا دیگه هیچ وقت نمیذارن بری توماس گفت تخم سگ بابا پیش از این که مادرم حرفی بزند گفت من نگفتم